واژه خودشه معنایی داره اطرافش هم میتونن معنا را تغییر بدن میتونن زیفتش کنن تنگش کن. میتونن کنن میتونن گسردهش کنن واژه عبارت به طریق اولا اطراف عبارت میتونن معنا رو گسترش بدن معنا سمانو را و لكم یعنی چی؟ یعنی چی؟ میوه و عب شما شما میوه و موارد زیاد از است که اطراف واجه میتونن معنی واجه رو پیدا کنند گسترش بدن یا معدود کنند اینو اینوی استردم بهش میگیم تناسب آره در واژه واجه به نسبت تو کتاب لغت یه داره نسبت اینجا باید به نسبت بسن نسبت اطراف احض کرد و واجه رو گفت یه معنی دیگه ای داره خندید و واجه رو گفت یه معنی دیگه داره اینو اسطلابش میگن علم تناسب دو بخش میشه یک تناسب آیات دو تناسب صبح یک آیه ها عبارت ها با قبل و بعدش چه معنایی میدن دو سوره ها با قبل و بعدش چه معنایی می دارد؟ یه سوره ممکنه با قبل و بعدش یک تارده معنایی خواهر کنه مناصبتیش دارد ممکنه این سوره با قبلش این سوره با بعدش ممکنه یه سوره مقدمهی باشه برای سوره با بعد. مسائل و یه جوری آورده که باید سوری باید یه مقدمه بشه خب آیا سوال از آقای آیا در قرآن تناسب آیات وجود دارد؟ بله آله و اسلامی معتقدند بله آیات بر اساس یک اصول و حکمتی چیده شدند قبل و بعد آیات آیه در آیه اثر میذاره آیه با قبل و بعدش معنا میشه سوال دوم آیا تناسب سوره ها قابل پذیرش است؟ در بعضی ها از نظر تناسب سوره ها اسلامی قبول نداره نه, نه. علت عدم قبول علت اصلی ریشه اینه که سوره ها تنظیم شده پیامبر نیست چینش سوره ها نه سوره سوره ها این که حتما اول بخره باشد بعد آل امران بعد نسا قبل از بخره هم این چینش زمان پیامبر نیست پیامبر اینجور نشیده به اصطلاح شما توقیفی نیست اشتحاد. اشتحاد. بله اصاب به اجتهاد خودشون این سورا را اینجور چیده ممکنه کسی هم بیاد بگه بوی اجتهاد ازش به مشام نمیرسه. چرا؟ چونگه ترتیب عقلانی نیست ببینید، سوره هنم، هشتاد آیه، انفار باشد، انفار، هفتاد و پنج توبه، و چه دوست سدی یا باید ابراهیم پنجو دو باید این باید قبل میمد باید جب نو دو نو حالا من فقط شماره میخوام بگم هجمایات هم همینه نه که شما فهمیدین آیات کجا بودن من قبول دارم بعضیشون بعضیشون ولی همهش اینجوری نیست بعضیشون هرچی ما ها با هم نمیخونه اگر واقعا به اشتهاش صاحب صورت گرفته براساس یه اصولی وقت اشتها یعنی یه اصولی داره مثلا میگه شماره تعداد خط‌هاش تعداد صف‌هاش تعداد چییش آیاتش یه اصولی هیچ اصولی ندارین چه اصولیه میرسونه که باید در زمان حیات پیامبر این چینه صورت گرفته باشه بعضی هم اعتقال ندارن به این چینش یه آقای به اسم بقایی این اگر تحقیق مقاله نداشی تحقیق هفته بعدتون بود 20 جلد کتاب نوشته نظم الدرر فی تناسو بل آی و صبر. بیست جد کتاب که آیات متناسبند سوبر نزم الدرر نالومه فی تناسب ال آی جمع آیه و سوبر 20 جد کتاب نوشته که میخواد تناسب را اثبات کنه بیس جد, جد خاصه بگید این آیه باید قبلش اون باشه باید قبلش این باشه بعدش نیم باشه این سوره باید قبلش اون باشه بعد بعدش نیم باشه این سوره داره مقدماتی ایجاد میکنه که سوره بعدی بیاد همد خدا رو میگه اصحانت با خدا رو میگه پریز از هدایت گمراهان و درست زالین را میگه بعد میگه بسم دارمان رایم این کتاب علف لامیم انسان ها را توصیف میکنه انسان ها بر اساس اون دعا بر چند سنفان سر سنفان مؤمنین ان یومنون بلغیب ان کفار ان ختمل هستن منافقین هستن مثلا که مثلا لده سوقد ناره هم چیزی بیشه این به شعالی هم کاشو شعالی باشه سوقدی چیزی نمیشه بعضی هستنده ایشماندان اسلامین رو نیم میگند کاری که نظم و دره و بقیه همسلوکی های نظم و انجام میدن تکلوفزاست تکلوفزا یعنی سخت نه یعنی بار بیخودی حمل کردنه بار زوری حمل کردنه یعنی داره زور میزنه اینو درست کنه من خودم خیال میکنم که اون تناسبی که آقای بقایی بین سوره آل امران و نسا بیان میکنه هم اون تناسب هم بین سوره نسا و ماهده وجود داره. افرادی مثل آقای مرموم تبا, تبا اعتقاد به این مسئله دارد. البته علامه بیشتر تو تناسب آیات اینو میگه میگه هر ای یک محور کلی داره و در اطراف اون محور کلی حرف میزنه درست پر میزنه به این طرف و اون طرف ولی اون محور کلی رو میخواد بیان بکنه ایشون در حلمیزان میفرماد اهداف کلی سوری ممکنه شما اینجور بفرمایید بفرموید اهداف کلی سوره در سوره های کوچیک یه صفحه دو صفحه یه اسمانتها ممکنه ولی تو سوریه بقره اهداف چیه؟ که هزار تا موضوع داره تو چی قالبی این هزار تا موضوع قرار بدن؟ هرچی بگید اینقدر کلیه تو تمام قرار میشه اونو گفت سوریه عالم همینه بفرموی بغل در مورد توییس رو میکنه وانوبرانو بکیل بقیل در مورد معاست رو میکنه خب این هم قاید دنیاویش رو چه کار کنیم. بفرموی اینا هم میخواد به معاست مالکم میکنه خب پیامت هم سوری قیامت هم این کار میکنه که هم در مورد قیامت هم در مورد دنیا دنیاش هم در مورد قدمی قیامت ولی سا خدا رو نمت کنه مثل آقای معرفت تر سوبر را نمیپذیب رفت. قبول نداشت، و بعضی دیگر مستد خیلی دیگر یه واجه دیگه مناشت فراموش کرد این بعد بگم حالا چیز خاص این تا رسه با آیات قبول تا رسه سوبر نه بعد خیلی کنکاش کنید یه چیز ایگه از ببینید واژه سیاق هم داریم سیاق هم همینه متو سیاق در قالب ضعیف الصلاحن شما وقتی تناسب مطرح میکنید تو قالب سوره هم از این واژه استفاده میکنید ولی در مورد سیاق نه سیاق همین دو کلمه قبلش چی و بعدش چیه آیه. بله توی آیه میشه. بله حد اکثر تو آیه تو یک آیه مم. این نمیخواد این آیه را با آیه قبلش بسنجی با آیه بعدش بسنجی این آیه این عبارت به قبل و بعدش این من یا این واجه به واسطی قبل و بعدش این معنی داره این خیلی نمیخواد این طرف اون طرف بزنید اگر بخواید به این طرف اون طرف آیه و سوره سر بکشید از واژه تناسب استفاده و این طرف معنی چی نگفتم. یه نکته دیگه بگم اون ببینید بحث از سیاق فر بحث از توقیفیه یعنی اگر یه لحظه بار برزمی بدید نه شیش اینجا باشه یعنی اگر کسی توقیفی بودن آیا را پذیرفت اون وقت میتون بحث بکنه سیاق آیاتو که بپذیر نپذیر اگر کسی توقیفی بودن سوبر را پذیرفت بیاد بحث کنه روی تناسب سوره آیا سورا با هم متناسب از چون بنابراین میگه پیامبر این کارو کرد خب پیامبرم براساس بر اساس حکمت این کار رو کرده میخواد در حکمت پیامبر دلیل بیاره میگه پیامبر وقتی این دعای را اینجوری کنار هم گذاشت پس معلوم حکمتی داره تو بحث تناسب میگه حکمتش چی بوده؟ تو توقیفی بودن میگه پیامبر به دست خودش این سوره ها رو اینجوری چید اول انقدر بقره پیامبرم به حکمت کاری نمیکنه تو تناسب بگیم حالا حکمتش چیه؟ اگر کسی توقیفی بودن را نپذیره حق بحث از تناسب نداره اگر کسی بگه بعد از پیانور اومدن رو چیدن حالا بیا تو تناسب چه بگه؟ بگه تناسب دارن؟ بخواد بگه عمر ابن براساس بر اساس یک حکمت در رو تنظیم کرد یا زیدار نصابه؟ این که هیچ کسیم یا یکی یکی اگر بگه اشتهاد صحابه سورها منظم شدد دیگه حق نداره بحث تناسب و سور بکنه؟ تو میخواد برای زید بن دلیل بیاره، حجت بیاره، حکمت درست کنه. خب زید آدم عادی بوده. از کجاش برای ساز حکمت این کار کرده باشه؟ درست شد؟ این مسئله مهم بحث از تناسب فرعه، بحث از توقیفی بودن. اگر توقیفی بودن سوره رو پذیرفت، لازمی تناسب وزیری بحث میکنه. اشکال نداره، بحثش جاریه. چی این طرف بگه, بگه دارد یا نداره؟ اگر تناسب اگر توقیفی بودن سوره را پذیرفت بحث از توقیفی تناسب سوره بکنه بگه تناسب داريان خاطر ولی اگر توقیفی بودن یکیشون شونو نپذیرفت تناسب اون مورد را حق بحث ازش نداره تناسب لزومی نداره اصلا بحث بشه اون شخص این کارو کرده اون شخص که حکمت لزومی نداره شد داشته باشه که ما برای انسان عادی قائل که اینا با خدا مرتبطن یک سال سرشون میشه درسته؟ این مراسی اشتهادی کار کرده. ممکنه کسی اشتهاد دیگه کنه. او برای اشتهاد خودش دلیل میوری. نه برای اشتهاد خودش دلیل بیاره. او هر کس برای اشتهاد دلیل میوری. این لزوم نداره شما بحث علمی با کوریدن این زمین نمیده. او مبنای تناسب. بله اینم مبنای تناسب. اینجا توضیح دادم. مبنای تناسب چیه؟ بحث تو تفکودنه؟ گستری تناسولم گفتم خدمتون اما چیز در برمی گره باجه, باجه رو برمی کنه یه پاینامی که دنجور روش کار میکنه مصاحبت معنایی توی زمین کار کردید؟ همینه یکی واجه با همراهاش رفیفاش مساقبهاش معناش فهم میکنه مثلا رقیبت رقیبت این چی؟ پس اگه داری به چی متعدی داشتی؟ رقب فی، رقب عنافی تنصیر میسرد. آنه این زمیره. ممکنه کلمه تنصیر بگذاره. اسم فل. زمیران کلمه از بکنه اسمی فل تنصیر بگذاره. بسید شما وقتی که حرفی مثلا محترمانهی گفتید نمیشه بعدش کلمه فشداری باشه. درسته؟ ها؟ مزاجرم هستید؟ وقت یه حرف چالو میدانی حالا در نکست دار اطرافش نیمی فوشی پس اگه یه اومد بعد از یک حرف خردمندانه باید روش کنید بر معنای صحیح این مصاحبت معنایی واجه است. خب. شما کجا رفتید؟ گستره تناسوب که بودید؟ گستره تناسوب منکران تناسوب اینو تنظیب و تنظیبی اینو اینو میخواد بگه مواردی که مثل همن نظیر شبیه به همن مشابه و بیدره این هم چیزی چیز خواستی نداره استدراد گسترش استدراده گسترش باید حروص در تام مورد که بتون ارتباطی میان آیا ایجاد کرد راه داره برخی از وجوه ارتباط آایا اینجوری هستن این رفتی به تناسب نداره وجوه ارتباط آیا تاکید مطلب آیه اومده مطلبی رو تاکید کنه خب ممکنه بفرمایید این آیه با اون آیه‌ای که تاکید مؤکد و محکد با هم توزیع مطلب گذاشته بیان مستاق آیه اومده مستاخ و مستاخ با اون چیزی که اومده که مستاخ را لازم داره تناسب داره بیان علال، معلول علال با هم تناسب ندارن. تنظیر و تمثیر، یه چیزی میگید، مثال براش میدید، مثال به اون حرفت تناسب نداره، ارتباط نداره. آره. استدراد، یه چیزی میگید، بعد میخواد یه چیزی رو بشت بشت بینید، یا ازش ترد کنید، هر دو معنا میده. این موردی که اووردی به اون، یه مناسبتی شده. بای خدایی باید صفحه شست و هفت اونا رو میخونید کلمات رو بهشون اشاره کرد انواع تناسب تناسب کلمه تناسب جمله مبتدا خبر فیل مفعول مفقور اینا اینا کلمه است. به هم معنای متنافی نمیتونه داشته باشه مگرد این قرینه بیاد تناسب جمعه اولم یاراللدین کفرو انستامواتی بر ارتکانتا ردقن و جعلنا. ببین تبری در تفسیر این آیه واسه بود از ارتباط میان اول و آخر و میگه نزدیکترین سخن در معنای این است که آسمان و زمین از باران و گیاه بسته بود پس آسمان به سبب باران و زمین وسیله گیاهان بازوش گفته شد پس آسمان به سبب باران و زمین به وسیله گیاهان بازوش گفتفه شد آره بسته شدن وسیله باران آسمان باز شدن و بسشون از وسیله باران و زمین وسیله گیاهان در اومده بازش کرد حالا میگیشون نظرش اینه اولا يا <تصفح> الذين <تصفح> كفروا ان السماوات بالارض كانت رتقا رتقين چی فتقين چی